فرزند آوری مجدد باعث وسط رزق میشه? رزقشون خدا تأمین میکنه در جای مختلف هم در آیات گفته شده و هم در روایات صحیح که شما به فکر رزق فرزندانتون نباشید تلاش معمولی داشته باشین خدا رزقشونو میرسونه